سخنرانی دکتر محمد اشعری گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلى آله تیبین الطاهرین از لاثی المعصومين لا الله في الارضي اللهم انت السلام و منك السلام عليك السلام و اليك السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات السلام علی الأئمة الهدین المهدیین السلام على جميع انبیاء الله ورسله و ملائکته اجمعین السلام علینا و على عباد الله الصالحين. السلام على علی أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة السلام على الحسن والغسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبي السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر القاظم السلام على الي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجباد السلام على الي بن محمد الحادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على العجب بن الحسن الغائم المحدث سلام عليك يا یا عبا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیکه مني سلام الله ابدا ما بغیت و بغیت الليل و النهار و لا الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على الحسین و علي علی الحسين وعلى و على ابن الحسين وعلى اولاد الحسین و اصحاب الحسین قال الحسین عليه السلام انما خرجت لطلب الاصلاحی امت جدی قریدو ان آمر بالمعروف و انها ان المنکر و اسیرت سیرت جدی و عدی در سه سال گذشته توفیق شامل شد سال اول با توجه به حدیث نبوی که فرمودن انل حسینم مصباح خدا و سفینه و کربلا و هدایت امام حسین و ارشاد اسلامی انسانه ها رو بحث کردم سال دوم فرموده عبی عبدالله در خطبه روز آشورا که از آیه قرآن کریم اقتباس فرموده بودن خطاب به مردم کوفه و لشکریان عبید الله زیاد فرمودن لقدسته و عليكم الشيطان شیطان ذكر الله العظیم تبن لكم لما سریدون بحثی در خصوص شیطانی شدن و وابستگی‌های شیطانی در جامعه و نقش کربلا در زدودن شیطنت ها. بحث شد سال گذشته فرمایش عبدالله علیه السلام که فرمودن انناس و عبید و دنیا و دین و لعظن على السنتهم بحث دین و دنیا و وظیفه ما در این دنیا با توجه به دینی که امام حسین علیه السلام معین می کند چیست بحث شد امسال با انایت مولایمون امام عقص علیه السلام و سلام. امیدوارم که توفیق بیابیم این فرمایه عبد الله را که همه منابع و مورخین نگاشته و نقل نموده موقعی که بنا شد از مدینه خارج شوند و به سوی مکه حرکت بفرمایند وصیت نوشتند خطاب به برادرشون جناب محمد حنفیه قسمتی از اون وصیت نامه این عبارت معروف است که نوعا ما شیعیان از و میدانیم که فرمودن انما خرجت و لطلب الاسلافی امت جدی اگر من حسین از مدینه خارج شدم و اگر شرایطی پیش آمده است که دیگر در مدینه تون نبی بمانم و من امامو و صدق پیامبر باید خانه و زندگی و در جوار پیغمبر بودن و مدینه نبی را رها کردن پذیرا انما. این نما و جز این نیست با توجه به این که در زبان عربی کلمه انما حرف از اعداد حسرت، انحصار را میرساند این اینست و جز این نیست من فقد و فقد برای این خارج می شوم از زندگی و شهر و دیار خود دست میکشم کشم لطلب الاصلاقی امت جدی به جهت اینکه در امت جد من می خواهم اصلاح ایجاد کنم اصلاح در مقابل افساد است اگر حساد ایجاد نشده باشد اگر آلودگی و تباهی و تاریکی ها وجود نداشت از دید امام حسین علیه السلام خروج برای اصلاح چه معنایی دارد؟ در قالب مثال اگر عرض کنم جسم یک انسان زمانی که بیمار نیست میکروبها ها و آلودگی ها بر بدن یک فرد نفوذ نکرده است کلمه معالجه معنا پیدا کند اگر حفظ و سهمت رحمی شود اگر نگهداری سلامتی بدن یا پیشگیری از بیماری مطرح می کنیم، با کلمه معالجه خیلی فرق می کند. در حالت عادی یک انسان سالم میگوید: الحمدلله که سالمم ولی برای حفظ سلامتی خود نیازمند به دستورالعمل‌هایی هستم که از صاحب نظران سؤال می کنم چه تغذیهای ای، گونه ورزش و حرکت بدنی و چه شکل زیستن که سلامتی جسمی من حفظ شود این یک وقت است اما اگر بدنی بیمار است نشاط و سلامتی و تندرستی این بدن به مخاطره افتاده است یک وقت انسان بیمار توجه ندارد که بیمار است این خود یک مشکل است جهل مرکب میشود همان گونه که بسیاری از انسانها گرفتار نادانی، جهالت، انحراف، آلودگی هستند و نمیدانند که گرفتارند آن که نداند و نداند چه نداند در جهل مرکب ابد و در بماند اولین قدم حرکت به سوی سلامتی چه در جهت جسم چه در جهت روح چه در ابعاد مادی وجود انسان چه در ابعاد معنوی وجود انسان یقظه یا بیداری است این بیداری و هوشیاری و آگاهی و اطلاع بعد از جهل مرکب پاهد بود لذا اگر انسانی فهمید که مریض است در صدد معالجه خود برمی آید آلودگی ها و نارسائی در جسم من وجود دارد یا خود بلدم چه کنم این آلودگی ها رو از میان ببرم یا به آنانی که میدانم اگر چه خود میدانم از من داناترم از بعد عقل و نقل فتحل و اهل ذکر انکنتم لا تعلمون مراجعه به اهل فن می کند پس تا زمانی که فساد. آلودگی و تباهی ایجاد نشده باشد اصلاح و از میان بردن آلودگی ها معنا پیدا نمی کند به قول منطقیون قضیه سالبه به انتفاع موضوعست اگر موضوعی مطرح نباشد حکم معنا پیدا نمی کند لطلب اصلاح امت جدی یعنی امت جد من فاسد شده است آلودگی ها در امت جد من راه پیدا کرده است من امام حسین علیه السلام تکلیف دارم این آلودگی ها و میکروب هایی را که بر پیکره کره اسلامی نشسته است به دو و از میان ببرم دو بحث اینجا مطرح می شود یک آلودگی هایی که ایجاد شد چه بود حسابی که جامعه اسلامی را گرفته بود چه شکلی بوده است که امام حسین علیه السلام ارزش اسلام و اهمیت از بین بردن اون آلودگی ها را تا به اون حد می داند که جان ولی الله را به خطر بیندازد شهادت را به حجت خدا و آخرین فرد از خمسه طیبه به بدترین شکل ممکن به شهادت برسد ناموس خدا و آل الله تن به اسارت بدهند یا نعوذ بالله باید گفت امام حسین یک انسان احساساتی عاطفی غیر منطقی بودند مسئله اینقدر بزرگ نبوده اینقدر مهم نبوده احساسات عبی عبدالله باعث شد نعوذ بالله که این مقدار حساسیت نشون بدهد کربلا ایجاد کند خود به شهادت برسد و اون همه مسائل را بر اهل البیت وارد سازد نعوذ بالله از معصوم با توجه امام شناسی و اعتقادی که ما داریم و تحییدی که قرآن در مورد این بزرگواران دارد اینها متحرونن و جعلهم اعمتن یهدونن به امرنا و اوهینا علیهم سعل الخیرات اینها کسانی هستند که فعل خیر را خدا بر آنها الهام می کند و بر مبنای دستور پروردگار حرکت می کنند و پیش می روند آنی و کوچکترین عملی بر مبنای هوای نفس عواطف و احساسات غیر منطقی از این بزرگواران سر نمی زند. اگر خدا دستور میدهد، از پیغمبر اطاعت کنیم بی و شرط همچنین از اهل البیت و اولو امر که دوازده معصوم بعد از پیغمبران دوازده امام اطاعت محض داشته باشیم خود قرآن ثابت می کند. اگر محصوم نباشند اطاعت محض معنی ندارد مگر ما در قرآن نمیخوانیم ولا و من اغفل نا غلبهو انذکر اون کتی که غلبش را از یاد ما غافل صافتیم متیهون شدیم یعنی اگر بنده ولو به عنوان پدر که طبق معیار شرع بر در زندان ولایت دارم، امری می‌کنم که در لحظه‌ای بر اساس رفلت قلبیم از ذکر خدا، یعنی منهای امر الهی، امر هوای نفسی من است، او نباید از من اطاعت کند. ولی پیغمبر و امام را، اطیع الله و اطیع الرسول و آل الامر می کند، این خود شاهدی است که و بسیار از آیات دیگر و روایات و بحث های کلامی که در اون مقوله نیستم که برای ما ثابت میکند امام حسین علیه السلام چون سایر معصومین از افرادی نیستند که بر مبنای احساسات حرکت کنند، کوه را کوه کنند، کوه را صاف سازند، آی مردم امت جدن به خطر افتاده، اسلام به خطر افتاده، قرآن دیگر ارزش واضعی خودش را به عنوان یک کتاب الهی در میان جامعه ندارد پس باید من حسین تنز کشتن بدهم و اگر جدن رسول خدا به من فرموده او خروج الال ان الله شاع ان غتیلا هم قیغمبر هم خود امام حسین پس نشون میده مستدر خیلی مهم بوده است. اونقدر مهم که به قیمت شهادت عبی عبدالله و اون همه وقایه کربلا باید تمام شود این یک مسئله که انشاءالله بعد خواهیم گرد مسئله دوم که به خصوص در زمان ما مطرح است و یک تکلیف شرعی هر دل سوخته نسبت به تشیعیم و پیروی از عبی عبدالله علیه السلام است اگر فساد ایجاد شد تکلیف ما چیست اگر در امت اسلامی آلودگی ایجاد شد، امام حسین تن به شهادت می‌دهد ما به اندازه تکلیف و مسئولیت خودمون در زدودن فسادها و آلودگی ها چه نقشی داریم و رسالت اصلاحی هر انسانی که مسئولیت را میفهمد در هر عصری از اعصار چه خواهد بود ابتدا قسمت اول بحث رو اجازه بدید چند روزی پی بگیرم معمولاً ثبات در یک دین نسبت به اونچه که دین میخواهد اجرا کند و در جامعه تعلیم بدهد باید ایجاد شود دین میخواهد چه تعلیمی در جامعه ایجاد کند تمامی فرهنگ قرآن تمامی آموزش پیغمبر و اهل در سه شاخه خلاصه می شود اقاعد صحیح احکام و عمل درست، اخلاق ارزنده شما اگر در حوزه‌های های علمیه و در رشته های دروس دینی عربی دارید صرف و نه و معانی و بلاقت و بیان و غیره اگر منطق اصول فقه فلسفه تاریخ رجال درایه این همه بحثا میخوانند تمام مقدماتی است که به وسیله این دروس مقدماتی از مکتب وحی در یک عقیده ما چه باید باشد؟ ما به چه معتقد شویم؟ شکل اعتقاد صحیح خدام است تا اون هست که حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام خدمت دو امام از امامان عطب خود می رسد عقیده خود را عرضه می دارد. شما حجت خدا و بلی اللهی آیا این شکل اعتقاد من را تعیید میکنید سهمی گذاری یا خیر مبادا عقیده در ما ریشه بدواند و طرز تفکری به عنوان بینش اسلامی در جامعه مسلمین نفوذ کند از دید وحی و از دید حق عقیده راستی نباشد این یک آلودگی که بدترین آلودگی است زیرا وقتی عید آلوده شد ریشه آلوده شده است ریشه آلوده شد انتظار سلامتی ساده و شاخه را نمیتوانیم داشته باشیم و انشاءالله در طول جلسات ار خواهم کرد نقشه که بنی اومیه کشیدن نه دقیقتر بگم نقشه که منافقین از حیات پیغمبر کشیدن اولین کارشون افساد در اقاعد مردم مسلمان بود و این افساد از عقاعد مردم مسلمان رو از کجا شروع کردند؟ از پایین بردن و اون سطح واقعی ارزشی داشتن یک خدا دو پیغمبر، سه امام، چهار قیامت همه اینا رو یه شکل دیگه جلوه دادن خدایی را که میخواستن به مردم بشناسانند بیر از خدایی بود که قرآن میگو پیغمبری رو که خواستند به مردم بشناسانن با مدرک عرض میکنم این الله و سعی میکنم تماما من مدارک رو فقط از کتب احل سنت بگم از باب اشاره فقط ان هر موضوعی رو که کردم یک مدرک بیشتر از شیعه نمیگه از این جهت که از نظر شیعه قضیه مسلمه محرزه تمام کتب ما پر از این فرمایشات ولی حتی از دید منابع دست اول اهل سنت مثل صحابه سته و تواریخ غضیه قابل پذیرش علی سنت نشون میدهم هم الله خدایی را خواستن معرفی کنند که خدای قرآن نبود پیغمبری رو خواستن به مردم بشناسانند که پیغمبر مکتب اسلام نبود و امانی خواستن بتراشند و به خورده مردم بدن که هیچ با قرآن و سیره محسومین سازگاری نداشت اون پایه رو خواستن دلردانن به قطعه بفرمایید کنیم ما وقتی میخواهیم فساد و خرابی ایجاد کنیم گاهی فساد و خرابی سطحی است. قابل جبران است خیلی مهم نیست ولی گاهی یک خرابی ها جنبه ریشهی بسیار خطرناکی داره مثال میزنم شما این ساختمان رو در نظر بگیرید اگر من با مشت محکمی به گچ دیوار حمله کنم تکی از گچ بریزه یا جای مشتمن به دیوار بمانه این یک مقدار خرابی است اگر تیشم و کلنگی بردارم چهار آجر رو بکنم چهار لامپو بشکنم شیشه پنجره رو خورس کنم این یک مقدار خرابی است ولی اگر پی ستون این ساختمون رو آرام آرام خالی کنم به خصوص با کلنگ زدنی که سر و صدا داشته باشد هم نه آرام آرام زیر پای ساختمان رو خالی میکنم تمام کسانی هم که در این ساختمان نشسته اصلا فرض کنید متوجه چنین خرابکاری از طریق من نشده یه وقت متوجه میشن سقف چه شد اون زمانی که دشمن دانا داشت پی این ساختمان رو خالی می کرد ما کجا بودیم اون موقع توجه نکردیم ابی عبدالله علیه السلام چون مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیه بلا بعد از رهلت پیغمبر فریادشون این شد با توبیدن امام به حق با حضیعیف اولیا الهی با بد معرفی کردن عقاید اسلامی که جامعه اسلامی رو از بین بردن وقتی عمود یک خیمه رو بکنی خیمه فرو می ریزد لذا می بینیم بعد از یک غر نه بعد از پنجه سال از رهلت پیغمبر به نام اسلام به نام قرآن به نام جامعه اسلامی جنایتی نیست که در جوامعه اسلامی اتفاق می پس چه شد؟ اگر ما می امام حسین فریاد زد لطلب الاسلاح بی پس معلوم یک ستاد خیلی بالایی بوده است که اگر در مقام تشبیه نسبت به این ساختمان مثال بزنم مسئله مسئله چهار تا کلنگ زدن و چار تا تیشه زدن و بخوا یه مقداری زواهر ساختمان زیبایی آش از به ببریم اون اسکلت باقی به ماند نبود اصلا بنابود این ساختمان فرو بریزه این در وقت شقایدش بود که ارز کنم شدیده ای رواج پیدا کرد دوم در بحث احکام یک شکل اسلام بنا بود تو جامعه رواج پیدا کند هر کار خلاف شرعی هر عملی که انسان دلش میخواهد انجام بدهد یک برکت اسلامی هم به او بچستاند همین کفایت کند تا اون میزان به نام خلیصه اسلامی اولا بگوید در زمان پیغمبر محللتان فعنه و حره به هما بله بود. من حرام میکنم تا اون زمان به نام جان تا حد به نام جان شین پیغمبر بر مکتب خلافت بر منبر خلافت تکیه بزند جان شراب به دست آشکارا و با تازیانه به سر و صورت ابی عبدالله علیه السلام بزند و بعد بگوید من خلیفه مسلمینم این چه است؟ و از نظر اخلاق کار به دنجایی برسد که هر نوع جنایت زده بشری عنوان اسلامی هم به خود بگیرد که عرض کرد در اینجا برخی از اسلام شناسان و برخی از معتقدین و علا ظاهر پیروان دین اسلام شدیدن به این طرز تفکری که الان بنده افتادم حمله می کنن و یعنی این حرفا چی ها شیعت این حرفا رو دامن میزنه ارزش اسلام رو میخواد پایین بیاره میخواد تاریخ اسلام رو تضعیف کنه نقش اصحاب پیغمبر و یاران صدر اسلام رو کمرنگ بکند این حرفا چیست در صدر اسلام مسلمین مجاهدت‌ها ها کردن و شادت نشون دادن جانفشانی‌ها ها کردن و اصلا اصحاب پیغمبر اگر نبودن ما جامعه این شنانی تا به امروز نمی‌داشتیم. اینها یه مقدار هند روی یا مبالغه است که شما شیعیان بر اساس تعصب شیعیتون دارید جواب یک از نظر قرآن دو از نظر روایات فقط در کتب اهل سنت سه از نظر تحلیل تاریخی فقط در کتب اهل سنت بوده است یا شیعه بر اساس احساسات میگه من از نظر قرآن کریم نمونه هایی رو خدمتون نشون میدم. که قرآن کریم بیان می‌دارد یکی از بدترین مشکل برای هر دین در تاریخ ادیان دخالت دو عامل دشمنان دانا و دوستان نادان که دست به دست هم دادند و بلایی به سر دین آوردند که اون بلا از یک برخورد مسلحانه آشکارای رو در رو و در سینه پیغمبر ایستادن قطعه بود است. سراغان قرآن در این زمینه میگه حالا من چند آیه رو در حد نمونه ارز میکنم هم در رابطه با امتهای قبلی هم در رابطه با امت اسلامی و به صورت کنی قرآن در رابطه با هر دین این مطلب رو بیان میشازم سوره ماهده آیات دوازده و سیزدهم در خصوص بنی اسرائیل است. توجه دقیقی نسبت به آیه دوازده تقاضا می کنم تا اصل مطلب که در آیه سیزده هم روشن بشه عوض بالله من الشیطان الرجیم و لقد اخذ الله می بنی اسرائیل قضیه بنی اسرائیله خداوند بیان می‌دارد برای ما امت اسلامی در قرآن که می که از بنی اسرائیل خداوند گرفت و به اصنا منهم, منهم اتنا عشر نقیبا و قال الله انیم اکم لئن اذنتم السلام و آتیتم الزکار و آمنتم به ما با اینها عهد بستیم، پیمان گرفتیم که این نخبای بنی اسرائیل را قبول کنند، نماز را بخوانند، زکات را بپردازند و به رسولان من خدا ایمان بیاورند. یه بحث تفسیری اینجا می‌کنن بزرگان که چرا اقامه صلات و ایتاء زکات را قبل از آمانتون به رسولی گفته است؟ باید در رسول ایمان بیاوریم تا بعد اقامه نماز کنیم یعنی اول عقاید بعد احکام اگر معتعدد به پیغمبر نشین عامل به اعمال پیغمبر که نخواهیم شد طب در جواب مفسرین فرمودند دقیق هم گفتند که خدا آیه نشون میدهد این ایمان به رسولی رسولان بعد از حضرت موسی چون نقباء رو قبلا مطرح کرد کسانی به نقبا ایمان میآورند که به حضرت موسی ایمان آوردند و این نقبا از طرف حضرت موسی دین رو به شما میشناسانند راز کن در هست، زکات دادن هست، و رسولانی که بعد میخوان بیان، با اونها ایمان بیارین و زرتمو هم و الله غرض حسنا، لاوکبسرن نکم سیعات کن، زل ادخالن جنات تجربه من ما این پیمان رو بستیم که اگه این کارا رو کردید چه کار میکنیم شما مدینه فاضله دارید یامعی ایدعاد دارید شما رو وارد بهشت میکنیم ارزش‌ها ها برای شما درست میشه یعنی بلا تشمید دقت رو فرمید شهارت شاگرد رو توی کلاسی سبت نام کردید مدیر مدرسه معلم کلاس به شما پدر شاگرد با اون مادر شاگرد میفرماید ما در این مدرسهمون شاگردان رو عالم بار می‌آوریم و ان الله اخلاقی تربیت می‌کنیم به چه شرطی فقط بیا تو مدرسه بره در تم نخونه گوشم نده ترامین رو اجران هر چقدر کسی نگفته میگه اگر آمدن در مدرسه ما ثبت نام کردید اون مقرراتی را که ما در این مدرسه معین کردیم پذیرفتید، همکاری با ما داشتید، ان الله شاگردان از نظر علمی و اخلاقی به آنچه که باید برسند میرسند. بلا تشبیه خداوند در آیات مختلف قرآن کریم در این تذکر رو میده وقتی من رسولانم رو میفرستم یک زوابت با این رسولان معین می کنم اگر مطیع شدید جامعه ایدعال دارید زندگی ایدعال دارید انسان های رشدی آفته ارزنده خواهید شد ولی اگر زیر بار نرفتید نه با اون آیه سریحی که در قرآن کریم در خصوص همه انبیا و تایانش ارتباط به امام عبد علیه السلام داره مگر غیر از این رو می فرماید کدوم آیه لغت ارسلان رسولانا دل و انزلنا مهه و کتاب و میزان لیهو من نا رسولانو کتاب می و میزان قرار میدیم و مشخص میکنیم کنیم لیهو من مردمی که میخواهند خودشون نقص دارن میان موتی میشن اینجا در رابطه با بنی میگه پیمانی گرفتیم که اگر اقامه نماز کردید و زکات دادید و نغبار قبول کردید و به رسول بعدی ایمان آوردید ولا ادخلنکم جنات تجری من تحت الانهار همین آیه ادامتش میفرمايت سمن كفر بعد ذلك و من بعد بعد ازالک بعد از این اطمام حجت ها بعد از این که پیغمبر اومد و گفت نغبه اومدن داد زدن راه رو به شما نشون دادن بعد ازالک کفره کفره دیدن کفران نعمت کردند، زیر بار حقیقت نرفتن چه می شود؟ فمن کفر بعد ازال که منکم منکم از شما ها خطاب همی همین من اسرائیل می همین شما که اقامه سلاح می کنی، ایتا ازدکات دارید نغبار قبول می کنی، به رسولان ایمان می اگر این شدید وارد جناتن تجریم تحت لنهار می شی. ولی اگر همین شما ها بعد این اطمام حجیت ها کفران ورزیدید سدد سدد زل سواعت سبیل شما گمراهید از راه جدا شدید به زلالت افتادید و دیشارهی برای شما خواهد بود یک حالا آیه بعدی روشن میکنه اینهایی که میکنه هر حرفا چی شما شیعا میزنید بعد از پیغمبر گمراه شدن کفران کردن میگیم یک قرآن بیان میکند که بعد از این همه ایمان ها می شود کف شود و بعد از همه این ایمان ها اگر کف شد زلالت می شود اینی که اینجا بیان میکنه؟ اما در این حال آیه بعد جان مثل من این آیه رو خوندم کایه آیه 13 رو توضیح بدم صد ما. نازهمی صاحهم، لآنهم و قلوبهم غاصیه، یحربون الکلنا، ان مبادئی و نتوحذن مماد کروب. به قرآن کریم؟ میگه پس اینها که نقض عهد کردن عهد چی بود؟ به پیغاندر ایمان بیارن لغوا رو قبول کنند، احکام رو اجرا کنند، نقض عهد کردن ما اونا رو از زحمت خودمون دور کردیم همون گونه که این کلمه لعن رو اینجا به کار برده خدا که ابلیس و لند کرد؟ این نعلایی کرد؟ خدا به ابلیس میگه این نعلی که لعنتی لعنت این نکه رجیم و این نعلی که لعنتی تو شده ای و لعنت من بر تو که این لعنت رو خدا در قرآن برای ابلیس کرد وقتی که از اطاعت سر بازد مطی بود اطاعت کنار گذاشت قبول داشت قبولشو کنار زد همونگونه که ابلیس به فرموده امام صادق با شک هزار سال عبادت رسید به زنگاهی که گفت دیگه نه وقتی گفت نه از لحنت بر تو خدا میگه لحنت بر تو خدا میگه یعنی از رحمت من دور باشی یعنی مواهب من دیگر به تو نخواهد رسید این شراجه بنی اسرائیل میگه میگه وقتی نقض عب کردن ما اینها رو دور کردیم از خودمون و جعلنا قلوب هم غافیه. دلاشون سخت شد سنگ شد یعنی نرود میخواهنین بر سنگ همین انسان یه زمان من قبل از این که امام را بشناسم اینجا به عنوان خدایات شاهدی احساس مسئولیت شیعی ارز میکنم این مسئولیت سنگین ما ایرانی هاست که پایگاه تشیعیو غرنها خون دل خوردن تا حقیقت شیعه رو به جهانیان بشناسانن یک زمان نشناختیم اشتباه میکنیم یک زمان شناختیم قدر, نادان... قدر ناشناسیم قدرانی نمیکنیم خدا در این آیه میفرماید اونهایی ای که بعد از اون کف برزیدن ناسفاتی کردن حق رو زیر پا گذاشتن دلشون رو سنگ می کنیم و جالا یعنی این سنت من خداسته من یه قانون گذاشتم اگه کسی کفران نعمت کرد دلش از ارزش دلی می مبادا ما ملت شیعه نسبت به مقام اولیای دین نسبت به عزت زهرا سلام الله علیها نسبت به امیر المؤمنین و آل علی بعد از این همه رنجها و خون دل خوردنها و خون دادنها و نوشتنها و گفتنها حاضر مطالبی رو بگیم که 500 سال قبل 800 سال قبل 1000 قبل علمه جوابشو رو میدادن. ممکنه بگی چی داری میگی براتون می خونم مگه تو بعضی روزنامه ها نوشته نمیشه. شده نوشته شده می براتون می خونم که امام را عالم آل رسول میگفتند. عالم یعنی کسی که چر... یه مقدار از دیگران دیشتر بلده نه یعنی نماینده خداس و معصوم است. این خطر تحریفه اگر امام حسین فریاد میزند، جند لطلب الاطلافی امت جدی چه اصطادی از این بالاقر که من امامی را که خدا معرفی می کند از اون حدی که خدا گفته پایین تر بیارم یه جور دیگه بشناسانم حکمی را که خدا بیان میکنه من به صورت دیگه برادر و خاهرم این آیه قرآنه داره میگه وقتی نقضه اهد کردم نقضه نسبت به چی؟ نسبت به اون که خدا در قرآن معین کرده ایمان بیارید به رسول اقامه سلاف کنید ایتای زکات کنید گفته های رسولان رو بفت وگه این رو خود قرآن نمیگه میگه وقتی نقضه کردن، ما اینها رو لند میکنیم دلشون تاریک میشه سنگ میشه اما حالا وقتی دل اینجوری شد چه میکنن وای یو حرفون ال کلمه ان موازعی یو حرفون ان موازعی خیلی عرض داره. کلمات الهی رو تعریف میکنن کلمات رو جا جا میکنن دین رو یه جور دیگه تفسیر میکنن حقیقت رو یه شکل دیگه بیان میکنن و کی و نص رو حد زن مماز و کروبه. فراموش میکنن که بابا اون حضی اون بهره ای اون سمری رو که شما در اثر تذکر الهی که به شما داده شد پدیرفتید چی بود از دست دادید یعنی وقتی شما بنابود مطیع بشید جنات بنا بنابود داخل بشید اون همه ارزشها ها بنابود برای شما حاصل بشه. حالا در مقام یه اشاره بخوام مرس کنم آقا شما اگه بنابود مطیع بشید مدینه چه وضعی داشت؟ مدینه کشتار خون ریزی اوسو خزد سی سال به جان هم بیوفتن دختران زنده درخو کنند چنین کنند چنان کنند. خب یه مقبار دنبال پیغمبر اومدی چی شد ابن حجر در کتاب بلاغت و می نویسد. از ما بزرگ. بزرگرد من فیلان بحثم ورآنی سال بستاریشی رو متقلن انشاءاله هست فهم کرد برای اشاره میکنم ابن حجر در بلاغت و خود از نویسندگان اهل سنته میگه مدینهی که در زمان ورود پیغمبر شرائط به گونه ای بود که اندکی هم قبل دختران زنده دف میکردن کردن ارزشی نداشت چنین بود چنان بود زبان رحلت پیغمبر دو هزار یا سه هزار تعدید الان از من باید مراجعه کنم زن آلمه به قرآن که در مکتب حضرت زهران درس خونده بوده جلسه ی تفسیر خانواده برای خانما داشته ها رو دیدید چی شد دیگه خود پیغمبر در آخرین سخنرانیشون باید منبر آخرین سخنرانیشون به نقل تاریخ توری چی فرمودن؟ مردم شما در چه وضعی بودید؟ با اسلام به کجا رسیدید؟ امیر در نهد الولاغه در چند خطبه که اگه شد انشاءالله اشاره خواهم کرد خطاب مردم میکنه شما در اثر اسلام به کجا رسیدید و چی شد؟ اینا نداره؟ اینجا رجوت بنی اسرائیل داره بیان میکنه میگه بنی اینها و نسل فراموش کردن حزن ما اون بهره ای که در اثر تذکر برده او وقت ادامش رو یک مطلبی خدا میفرماید ولا تزالوا تقتلوا على خائنة منهم الا ذليلا منهم همین جور هم ادامه داره لا جزاب طولمدکشه جلوم بره میبینید نیز زمانی مگر اینکه مطلع خواهی شد که هی خیالات جدید هی خیالات جدید هی تعریف جدید هی یک کلمه از قرآن میگه می شده که یک اجازه بدید باز من نمونه هایی در این زمینه عرض کنم صریح از نظر قرآنی سوره بقرہ آیه 75 74 شو بعد خودتون ملاحظه فرمایید فرصت اجازه نمیده من بخونم اون کاملا مثل سوره ماعده 12-13 که با هم دیگه مرتبط بود این هم مرتبطه که در آیه 74 سن مقرد از قلوب و کن من بعد زالک صحیح کن حجاره او اشکد و قصده که من بعد زالک مثل من بعد زالک همونجا بعد از اون که ایمان آوردن بعد از این که روشن شد بعد از این که اتمام حجت شد اینها ها کردن میرسه با آیه 75 خداوند میخواد بیان کنه این مردمی که این جور میخند دینو تحریف کنم؟ آفرت اسمعیل نه؟ انجیب منول کم؟ تو انتظار داری تو اطمینان داری تو تصور میکنی که اینا به تو ایمان بیارن رقیق کانه پریقون منهم یه دسته دینار انجوریان؟ یه اسمعیل کلام الله؟ سمت یوحرفونه من بعد ما آگلوه؟ فهم یعلمون هم اغلو داره هم یعلمون داره هم تعقل هم تعلق عجیبه ببینید ان نهیت بکنید آیا اتمینان به این داری که اینا بیان به تو ایمان بیارن یعنیدی آدم خوبی بشن مؤمنی بشن وقد خان فریق من هم یه دسته از اینها یتماون کلام الله سخن خدا را می من بعد من اینجا سوره حرب فونا رو میذارم بعد بخونم میام قسمت بعدی من بعد ما اغلوه و هم بعد از اینکه روی این کلمات تعقل میکنند و میدونن منظور خدا چی است ثم یه او شاید از نظر ادبیاتی ثم یه حرفون رو بر اون اغلو و یعلمون جلو انداخته ترکید روی روحیه تحریزیشون داره یعنی تعقل و تعلومشون هم بر اساس یه راه پیدا کردن جهت تعریف کلام خداست تا خدا هستن و شما اگر من بگم آقا ابو حنیفه در کنار مکتب امام صادق علیه السلام عقلش رو به کار اندافت، علم یاد گرفت، این بر اونور بر زد، برای اینکه دین رو تعریف کنه. چرا به من میگی که تو شیعه افراطی هستی، دارید در قدر اسلام مستمینی رو پایین میاری؟ نه خیر آقا، ما دلمون به حال اسلام میسوزه، می‌خوایم اسلامی که قرآن و پیغمبر گفته همه بشناسیم، اونجوری بشیم و این اسلام جد و پیروی از علی و آل علی امکان و اگر نه مگر این توش در میاد حالا ببینید هست یا نه ما آقا اگر مسئله رو نمیتونیم حل کنیم صورت مسئله رو نباید پاک کنیم صورت مسئله پاک کردن آیا مسئله یا مساله فرض کنید رو تخته نوشتند دانش عزیز بیایید مسئله ریاضی رو حل کرد هر چی نگاه میکنه ابهام داره مشکلاتی داره یواشکی با تخته پاک کنم مسئله رو پاک میکنه مساله حل شد اگر ما ندیده بگیریم این مسائل رو حقیقت که از میان نمیرود. حقیقت که براهان داره فریاد می در طول تاریخ کسانی بودن که دین خدا را لوش میکردن تعریف میکردن و اوجش رو علی عبدالله داره فریاد میزنه همون گونه که عبدکادم از زهرا سلام الله ها فریاد زد. شما نهج البلاغه رو ورق بزنید، فریاد امیرالمؤمنین بیشترین نقطه‌اش راجب تحریف دینه. که چرا دین رو اینجوری کردید؟ چرا پوستین موارون پوشیدید؟ چرا حقیقت اعتقادی، احکامی، اخلاقی، دیری به صورت‌های مختلف در بیاد؟ خب بعض آیه در این زمینه خدمت من بخوام سوره بقره آیه 230. این دو آیاتی که از ماهده و در بقره اقتدار پنج کردم در رابطه با ونیسایل بود. این آیه 230 سوره بقره یک بحث عام است. آن را به عديان بیان میکنه. نه تنها مثل آیهی ای که الان گرفتیم می خوام یا اهل کتاب 230 نیست آنو کلی از می کنم. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتون تعلمون اینجا روی سخن بنی اسرائیل نیست مسیحی نیستند مسلمون ها نیستند همه اهل کتابن یعنی همه کتانی که پیروان کتاب خدا بودند چه مسیحی، چه یهودی، چه مسلمان لابد تحریف می‌کردن حق و باطل رو قاطی می‌کردن قلبشون الحق بالباطل بودن که خداوند می‌فرماید لبث قلبسون الحق بالباطل و سمون الحق و انتم تعلمون مثل اون آیه آیه 213 است که اینجا من مجبورم آیه رو خوندم اجازه میخوام دو تا روایت از منابع دست اول اهل سنت هم در این رابطه براتون بخونم هرچند فعلا بحثم قرآنیه ولی این دو تا روایت با هم اولوان شاهد در این مطلب انشالله سریع عرضو کنم که زیاد وقتونم گرفته نشون آیه ایدریس و سیزده سونه بقره اول کانالناس و مثلا واحده یه بحثیدان فترت های اولیه انسانی کاری ندارد اون الله و نبیین مبشرین و منذرین. از اون زمانی که خدا انبیارا بد می با به عنوان پیغمبر ازمی که کتاب بیاره قانون بیاره انذار بده از حضرت از از نو علیه السلام شروع میشه و انزل معهم الکتاب که چی بشه لیحکومه بین الناسی مختلف اوفی تا در میان انسان ها نسبت به اون چه که اختلاف میکنن حکم روا دارد مثلا الان فرض بفرمایید ما پنج دو شاید راجع به یه درسی در کلاس درس با اختلاف داریم توحن رو نداریم اطلاعات لازم رو نداریم بنده به نظرم یه چیزی میرسه هم درسی هم یه چیزی میگه اما باعثم یه چیزی میگه اختلاف بین ما بالا میگیره استاد ما، معلم ما، مدرس ما، راهنمای ما، کنار ما نشسته خوب که گوش میده میگه خب حالا سب کنید حل اختلاف رو بگم چیه عکل مطلب رو توضیح میده جنگ هفتاد که هفته دو دو همه رو عوض بنه چون ندیدن حقیقت ره افتانه زادن اگر حقیقت رو که ما دعوان نداشتیم الان اگر نوشته ای که روی این کاغت پارکه به دیوار چکت بندن بنده از دور فرض کنید با اینا خوب نمیبینن یه چیز میخونن آقا هم خوب نبینن یه چیز میخونن آقا هم خوب نبینند اگر همه خوب ببینیم یه چیز بیشتر نمیخونیم ولی اگر من یه چیز خوندم ایشون میگن ظاهرا اینه اتفاقا اونیم که ایشون میگن نیست آقا میفرمان اینه اتفاقا اونیم کیشون میگن نیست حال خب اختلاف بین ما در گرفته یک فرض ایجاد اختلاف عدم شناخت داریدات نتونستیم بشنستیم یک فرض هم سوئلیته غرازورزیه من هم دن میخوام لجبازی کنم در بین شما اصطلاف بندازم خدا میگه چون افراد بستر اینجوری هستم پیغمبر میفرستم نیح کم بین نات فی اختلف و تیه تا در میان مردم هم کنم که نسبت به اختلافاتی که دارن بابا اینی که تو میگی نیست اونی که تو میگی نیست اونی که پیغمبر میگه قبول کن دنبالش برو اما اینجا به بعد چی میگه؟ ایداد همه درد اون قسمت قبلی نبود از اینجا به بعد درد بیشتری داریم درد امام ما از اینجا به بعده پیغمبر اومد کتاب آور همه او رو از بین برد بود ها رو از بین برد افکار جاهلی رو زدود مدینه رو به اون کیفیت برپا کرد ولی از اینجا به بعد چیه؟ دقیق بفرمایید از اینجا به بعدش و مختلفه سیه ایلالنزین اوتوهو من بعده ما جاعت همو البینات بعد یان بینه ها اختلاف اولی چی بود قبل از پیغمبر قبل از که پیغمبر بیاد مردم گیش بود چه کار کنیم؟ پیغمبر اومد حل کرد مسئله اینه و مختلط یعنی اون دینی که پیغمبر آورد اون کتابی که پیغمبر آورد اختلاف نمی کنن در اون دین و در اون کتاب الا مگر الگزین اون کسانی که او تو هم بعد ما بینهم، بقینات بین اومده نشانی ها اومده اتمام حجت ها شده تذکرات دادن یعنی مطلب که من روشون روشن شده اما باز اختلاف می دازن. این دو فرضی که گفتم یه فرض بنده آقا نمی بینم یه جمله ای میگم. یه فرض می بینم میخوام قرازورزی کنم میخوام لجوازی کنم پیغمبر داره خدا داره در این قرآن میفرماید یه اختلاف قبل از نبوت یه اختلاف بعد از نبوت اختلاف بعد از نبوت مال شیاطینه مال حق بازانه مال مناسبینه مال دوستان نادان و دشمنان دانات که این دشمن دانا وقتی میاد با دوست نادان دست به دست میده کارو با کجا میرسونه؟ من دانا معاویه و امراض رو خوب میدونه چه کنه دوست نادان روز آشورا ایداجه کی رو گذاشته تو کمان نشانه گرفته به طرف عبی عبدالله بعد به اطرافیانی که شاهد باشید من اولین کسی هستم که برای اطاعت امر خدا پسر تیغمبر خدا رو نشانه رفته دشمن این دشمن, دوست دشمن دانا دوست نادان چگونه عجیر کرده دشمن دانا امراض دوست نادان امیر المؤمنین داره صحبت میکنه میاد وسط صحبت علی تو مفصل بلق بلق قرآن میخونه که بر اساس این که وقتی قرآن میخونن باید ساکت باشن علی رو از حرف زدن باز بداره بعد میاد تیش علی میگه تا توبه نکنی تو رو قبول نمیکنیم تو مشرک شدی، تو کافر شدی، تو منحرف شدی. وقت علی هم سر در دل چاخ بکنه. میگه خدایا منو از این مردم بگیر. به من مردمی بهتر از این مردم بده. اصل من داننده اصلار نیست. یوسف من بحر این بازار نیست. وقتی دست به دستان میده و مختلف خیهه اللذینه اوتوه من بعد ماجاعتمون بینات باقیان بینه هم در رابطه با همین کلمه من بعد ما جاعتم البینات و بقیان بینهم ما آیات زیادی دیگری هم در قرآن داریم که از باب نمونه آیه نوزده سوره آل امران اون آیه تیکش مونده که آلا میخونم بعد ربایت بخونم آیه نوزده سوره آل امران رو دقت بفرمایید اِنَّدِّينَ اِنَّدَ اللَّهَ الْإِسْلَامُ دینی که در نظر خدا مورد قبول اسلام تصمیم امر فروردگار بودن و این راه رو گرفتن و جلو رفتن و مختلفا لدین او چول کتاب الا من بعد ما جا اخامل علم بقیان بین هم. دین روشن شده که اسلامه، اما کسانی که بعد از این که نشانی آمد ثابت کرد این دین اکثراً از اون دین سرباز میزنن یا تعریف میکنن و مختلفه اختلاف نکردن، اما کسانی که اول او کتاب کتاب بهشون داده شده، حتی امت های قبلی، الا من بعد ما جا علم علم بیان بینهم بعد از این که میدونن مطلب چیه از روی سرکشی، فقط هم امت البيهات قران اشاره میکنه در این آیه 213 ادامش چی میگه؟ خب یک امت اختلاف میکنه پیغمبر میآید. دو بعد از پیغمبر یاغیان و باغیان و سرکشان برای اهداف شخصی خودشون میان تو این دین تفرقه میندازد و یا افکار باطلی رو, رو رواج میدن. خدا چه میکنه؟ خدا برای مرحله قبل پیغمبر میفرسته برای مرحله بعد که میکنه؟ شهدا الله الذين امنوا لمختلفوا في من الحق باذن خدا قلب هدایت کرد با چی با رسول بعد هدایت میکنه با چی؟ با امام هم قبلش رو برای حل اختلاف پیغمبر قرار میده هم بعدش رو چی قرار میده میزان قرار میده اینجا اجازه بدید من دو تا روایت از منابع اهل سنت سری دیگه فرصت زیره هر دو هم نسبتا از منابع قوی هست کتاب مستدرک و صحیحین حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 122 آشنایی دارید کتاب مستدرک حسینی این چه کتابیه صحیح این صحیح مسلم و صحیح بخاری خب دیگه برای اهل سنت به قول خودشون ادل القرءان مستدرکی که عاصم نیشابوری بر این دو کتاب نوشته دیگه به عنوان مستدرک پذیرفته شده برای اهل سنت جلد سوم صفحه 132 طنزال عمال مطلبی هندی جلد 11 صفحه 612 مناقب خارزمی سطحه نوزده صفحه سطحه دویست و سی و شش میگه وقتی این آیه بر پیغمبر نازل شد سوره نحل آییش از کچه و ما انزل لاعلی کل کتاب الا و تو بینا لحمل لذی اختلف و فیه تقاضی دارم دقیق کنید درست اختلاف تفرقه، تحریف کلمات عوض کردن توی مردم شیطنت کردن آیم دریز تو این زمینه وما انزلنا علیشن کتاب ای پیغمبر کتاب بر تو نکردیم الا مگر لطبی یه نه تو حبیین کنی بیان کنی روشن کنی لحوم برای اون کتانی که الازی اختلفوفی دارن در اون اختلاف می و نوعی به شکل دیگه ای در میارند. این منابعی که خوندم میگن وقتی این آیه نازل شد قاله رسول الله پیغمبر فرمود یا علی انچه تو بایینل امتی مختلف و من بعدی یا علی انچه تو بایینل امتی تو برای امت من باید تبین کنی و توضیح بدی و مشخص کنی مختلف و من بعدی اختلافاتی که بعد از من بنا ایجاد بکنند و بنا این دستیسا یعنی همان گونه که خدا فکر امت را میکند با پیغمبر خدا و پیغمبر با هم فکر امت رو میکنن ولی بعد از پیغمبر اگر نباشد هست. و هم این ناقصه به همین جهت اکمل تو مال روز قدیره اگه قدیر نباشه اکمل تو نیست اطمام تو هم نیست که الله این بحث حالا با سعودی افقاهم کرد با مستدرک حاکم جزء 3 صفحه 149 یعنی اولی جزء 3 صفحه 122 بود دومی صفحه 149 در ادامه همین بحث روایاتی داره پیغمبر فرمودن اهلو بیکی امان لأمتی من الاختلاف أهل بیتی امان ل من الاختلاف. اگر امت مرا میخواهید خواهید از اختلاف در امان واشن باید وعتستمون به حبل الله جمیعا ولا تفر رو همه نوشتن این حبل یعنی بلایت عبیب نبی اگر دور محور امام الهی مثل پروانه ای به شمع وجودش نه تسبیل همین که می شود لزام یه جور امرعات یه جور یه یه جور و اونجا میرسه آقا رنجاور نیست شما منهای بحث شیعه و سنی منهای بحث اتلا مسلمان و قرآن و معتده به دین با عنوان یک انسان فعلا نگاه کنیم مسلم وارد کوفه شده سلام الله علیه خب چی از مسلم نقل کردن شما نشون بدید آقا در تاریخ از کتوری شیعه نه عرض خودا غير شیه بگید مسلم آدم بدی بوده، خائنی بوده، فوشی داده، ناسزا عمل کرده، عذری به کتی رسوند. مسلم جوری زندگی کرده وقتی اون همه جمعیتم هم در کوفهش اقتدار کردن، وقتی که بنا شد بهش گفتن وصیت رو بکن میخوایم الان تو رو گردن بزنیم. نگاهی به این ور و مجلس کرد. باز عمر صد رو از قبیله خودش آشنا دید. گفت عمر صد وصیت اون عمل به وصیت کنم یا گفت بگو گفت چند رسیت دارم یک این ذره منو شمشیر من و صلاح من اینا رو بفروش من انقدر تو کوفه قرض دارم قرضای منو بده. یعنی کسی که این مقدارم تحمیل اقتصادی و دیگران نداره. اون دا همه اینا نون وقتی اومد به دیوار خانه تو اتکیه کرد دیگه جایی نداره بره زن اومد گفت که از اینجا برو، همینقدر که احساس کرد به پیاده رو خونه کسی که راضی نیست خب چشم میدم ولی جایی ندارم کجا برم در. یعنی انسانی که تمام جوانه به قضیه رو فزی... انسانی که در بزرگی و عظمتش ابن زیاد جرسومه فساد وارد خانه هانی شده خانی هم نقشه رو قبلا ترریزی کرد شما فست فردگاه شو وقتی من تندی کردم با ابن زیاد اماممو رو به زمین زدم تا از پشت پرده حمله کن کلکی این تیورسومهی ای فسادو بکن سه بار به نقل تاریخ مسلم شمشیر آورد بالا برگشت حانی برگشت هی نگاه کرد ابن زیاد متوجه شوریشی رفت وقتی رفت حانی به مسلم گفت چرا نخشتی؟ گفت شمشیر آوردم بالا دیدم من پهی که حسینم حسین اینجوری کار نمیکنه من مدافع مکتب علیم که علی نیست همون علی که میگه من کشته میشم من خونه دل میخورم استخانه تو رو و نگه میدارم خاره تو چشم میپذیرم ولی حاضر میسم از حد یک ذره اون طرف سر بگذارم و این باعث شده که امروز هر جای دنیا میری کسی که یک ذره دل دارد و دل گل نشده تا چهار کلمت علی آن علی میگه نگه عجب آدم ها. ای کاش ما میتونستیم باینابیش در عصب شده بشی چرا توی ارزش ها رو نشون میده خب این مسلم مردمی که بر اساس اتاسه... ایل شیطان دره نبال حق نران تفرده و باطلگرائی تا به با اونجا برسونه میگه یه شب مسلم وقتی نماز میخواست بخونه تو کوفه اون قدر جمعیت کجوم آورده بودن که هم دیگر رو تنه میزدن به تعبیر من شاد راحت نمیتونستن سجده به جا بیارن یه شب وقتی مسلم نماز مغربش تموم شدید هیچ کتر پشترش نیست حالا اگر طبقان نقلی که پسراش همراش بودن یه بحثی داره حالا بگیم نبودن یه بحثی داره که ال ظاهر همراش بودن میگرده یه نفر پیدا کنه بتونین بچه ها روفعللم به او بسپره که خودش به این مشکل مثلا همراه بچه ها هم در باشه تو کوچه های کوفه این و انور میره به دیوار خانه تو تکیه میکنه. تو هم میگه شخص شلوغ اوضزا ناجور من هم یک زنه هم سریع هستم ممکنه برای من هفتر بیارم بگر یه مرد نامحرم پشت دیوار خانه میاده میگه آقا از اینجا برو هفتر فرماین جایی ندارم کجا برم چطور مگه این شهر نیستی نه من مسلم پی که ماموسیق میدونید دیگه آنا فقط اشارهی بکنم که منم انشاءالله اسمم در لیست به خونه های حضرت مطلب صفت بشه و به این افتخار کنم و به بالام از این بابر کنم. یه وقت مسلم رو به بالای, دا... بالای پا پشت بردن گفتن وسیعت هایی که میخوای بکنی مسلم یه وسیعت این بود که عرض کردم اما یه وسیعت دیگه گفت میشه خواهش کنم یه نامه برای امام حسین بنویسی چی میخوای بنویسی آخه من برای حسین نوشتم حسین جان بیا مردم کوفه با من کردن. ترسم امام حسین بیاد کوفه و این مردم نام پایدار خیانت و عزت کنن به مسلم نامه بدید که اگر میشه آقا نیارد. وقتی به مسلم گفتن آماده باش با کمال قدرت استاد سر از بدنش جدا کردن سر و برای اینکه جلو جلوه دارال اماره نصف کنن نگه دارن نگه داشتن بدن رو از پشت بام به پایین انداختن این شهری که این همه جمعیت پشت سر مسلم نماز کنده بود وقتی توشون اختلاف انداختن کار به جایی رسید که بدن مسلم را به دون حضب و تو کوچه می و کسی صدایی هفجوریش بر نخواست آیا این به اون آیات رفت بدید نفرمود اگر و من کفرم من بعد زالک اگر کسی بعد از فهمیدن ارزش ها بخواد کفران نعمت بسمت به ارزش ها باشه کارش به کجا میرسه اما یه قضیه هم زوح یا اصل آشورا در رابطه با مسلم استقام داد وقتی اوی عبدالله بر مرکب شدن به زحمتی ودا کرده بودند. حالا میخوان حرکت دیدن تیر از پا از پا بر نمیداره هر چه از کو نهیب زدن دیدن حرکت نمیکنه خم شدن دیدن دختر خرسانشون های رو گرفته میگه باباتا پایین نه یا کاری با تو دارم نگم نمیذارم حضرت از, از به زمین اومدن دختر عرض کردن بابا جون وقتی خبر شهادت مسلم به شما رسید در بین راه شما بچهای مسلم رو تدار زدید رو روز دی نشوند نواقش کردی یکی از این بچه ها به شما گفت آقا پدرم شهید شده شما دارید تیم نوازی میکنید و من میخوام هم اکنون به دست خود تیم نوازی